ده سال در تهران سابقه تدریس دارد به علاوه سی 39 سال سابقه در کشورهای عربی متولد سال و دو شمسی در بغداد نویسنده، پژوهشگر، شاعر، تحقیقگر، فیلمنامه نویس و عالم الهی که خدا را می شناسد تخصص در مدیریت کسب و کار، توسعه پروژههای تجاری، توسعه منابع انسانی، علوم زبان عربی، عقاید، تاریخ و شجره نامه و سایر تخصص‌ها دارد. آثار او او بسیاری از کتابها را در قالب چاپی و الکترونیکی منتشر کرده است و بسیاری از کتابهایش آماده انتشار هستند. کتاب‌های چاپی او در بسیاری از نمایشگاه‌های کتاب عربی و بین المللی شرکت کردند، از جمله قاهره، مراکش، دمشق، شارجه، بقداد، اربیل، تهران و سایر شهرها. همچنین کتاب‌های او به عنوان منابع اطلاعاتی توسط بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای رسمی و بین تأیید شدند. فعالیت‌های او به علاوه از بنیانگزار و مدیر عامل مکالمه عربی او نیز فعالیت های فراوانی در خدمت به جوامع بشری و توسعه آنها برای بهبود داشته است شامل موارد زیر است. یک بنیانگذار و رئیس مرکز خلاقیت جهانی دو بنیانگزار و مدیر عامل آلایکا برای همکاری های تجاری و سرمایهگذاری خلاقانه. سه. بنیانگزار و مدیر عامل جهرخرایط چهار، بنیانگزار و سردبیر دار علاش آر پنج، بنیانگزار و مدیر عامل خانه انتشارات بینون مللی شعرهای او، یک شاعر جامعی که در ترکیب شعرهای عمودی به زبان عربی فسیح گویش آمیانه عربی و سایر استفاده ها برای اهداف مختلف تخصص دارد او در ترکیب شعرهای تاریخی رمزگذاری شده استاد است که رویدادها را به شکل رمزگذاری شده با استفاده از اعداد و محاسبات عددی تاریخچه شعری تاریخمند می‌کند و نوآوری کننده یک روش جدید در ترکیب شعرهای عربی عمودی فسیح است این روش اولین نمونه از این نوع در جهان است که او آن را در یکی از مجموعه‌های شعری خود فاش کرده است تاکنون تعداد سامانه های شعری که او در زبان عربی در طول زندگی خود ترکیب کرده است، بیش از 610 سامانه شعری شامل شعر، قطع، تکی و بیت یتیم است. این شامل ترانه برای کودکان، شیر بچه نیز می شود و کل تعداد بیت های آنها بیش از ده هزار بیت شعر است که در هفت مجموعه شعر بزرگ توضیح شدند و هر کدام نام جداگانه‌ای دارند، کل تعداد صفحه های آنها 2554 صفحه است. موقعیت های شغلی او، شامل نمونه های واقعی است، از جدیدترین تا قدیمیترین، یک مربی زبان عربی برای غیربومی زبانان و استاد تعیید شده زبان عربی در مؤسسه شهروندی در تهران، از تاریخ 24-18-23 میلادی تا کنون، دو و بنیانگذار و مدیر عامل خانه انتشارات بین المللی. از تاریخ 27 22 میلادی تا کنون، سه توسعه دهنده پروژه های تجاری در شرکت تولید نرم افزار هلندی بگلاس. از تاریخ 295 21 میلادی تا تاریخ 294 21 میلادی وی درخواست استفای خود را از کار در این شرکت ارائه داد تا به طور کامل به انجام وظایف خود در آلایکا اختصاص دهد چهار، مسئول دپارتمان عربی در شرکت تجارت بین المللی کایناک هولند، از تاریخ 24-28-21 میلادی تا تاریخ 29-5-21 میلادی در این شرکت به سمت توسعه دهنده پروژه های تجاری در شرکت مادر، یعنی شرکت تولید نرم افزار هولندی به گلاس، ارتقا یافت پنج بنیانگذار و مدیر عامل جوهر الخرایت از تاریخ بت تبت میلادی تاکنون شش بنیانگذار، مدیر عامل و سردبیر آلایکا کارگزار سرمایهگزاری مسئول در شرکت شراكتهای تجاری و سرمایهگزاری آلایکا از تاریخ 23 ه هجده بیت میلادی تاکنون هفت مربی زبان عربی برای غیر بومی زبانان و استاد تأید شده زبان عربی در موسسه آوای هستی در تهران از تاریخ 28 6 میلادی تا تاریخ 29 میلادی، 8 مربی زبان عربی برای غیربومی زبانان و استاد تایید شده زبان عربی در مؤسسه بین‌المللی زبان در تهران از تاریخ 27 7 هفت هفته, هفته میلادی تا تاریخ 29 21 میلادی نوه بنیانگذار و رئیس مرکز خلاقیت جهانی که به صورت رسمی در وزارت فرهنگ سوریه در دمشق با شماره 1782 و, دو و تاریخ 27/14/09 ثبت شده است. از تاریخ 22/29/08 میلادی تا کنون، 10 ویراستار و نویسنده در مجله شادی برای کودکان در مونترال، کانادا از تاریخ تاسیس آن 21 1 08 تا تاریخ 20/12/31 میلادی. 11 تحقیق در دپارتمان اواید و تاریخ در بنیاد بین المللی آلالبیت برای احیای میراث با شعبه اصلی در دمشب از تاریخ 27606 تا تاریخ 2630 میلادی 12 دبیر سردبیر مجله قبیل های توسط شورای شیوخ قبائل میانه رود در کربلا عراق از تاریخ تاسیس آن 28403 تا تاریخ 29303 میلادی تسلط او بر زبان عربی و ادبیات آن استاد راف آدم الهاشمی به بهترین شکل زبان عربی و ادبیات آن را به احتراف فرا گرفتند و تسلط وی بر زبان عربی و ادبیات آن پس از بررسی شخصی و دقیق آن بوده است و نه از طریق برنامههای تحصیلی مدارس و دانشگاهها و همچنین نه از طریق کتابهای زبان عربی نوشته شده توسط نویسندگانی که گفته میشود در آن تخصص دارند زیرا در آن برنامه ها خطاهای گرامری، فکری و علمی بسیاری را یافته و نظرات آنان را با اثبات علمی و استدلال منطقی رد کرده و برخی از تحقیقات زبانی خود را در بسیاری از کتابهایش منتشر کرده است. از جمله در کتابش با عنوان مردم و قدرت مسلط که به منبع قابل اعتمادی برای بسیاری از سازمانهای بین و رسمی تبدیل شده است. و نتایج تحقیقات دقیق وی پس از بررسی دقیق بیش از چهل هزار جلد از مهمترین کتابهای مرجع و منابع تاریخی که بین بیش از چهار هزار پانصد عنوان توضیع شدهاند از جمله صدها نسخه دستنوشتهای اسیل و نادر برجا آمده است برای آشنایی بیشتر با استاد رافع آدم الهاشمی و مطالعه و دانلود تمامی کتابها و انتشارات ایشون به سایتهای زیر مراجعه کنید، یک خانه انتشارات بین المللی. interpovaza.com دو مکالمه عربی به زبان عربی ar.mukalamharabi.com سه مکالمه عربی به زبان فارسی فارسی mukalamharabi.com با تشکر از شما برای گوش دادن به این فایل صوتی و به دنیای استاد رافع ادم الهاشمی پادشاهی فرهنگ علم و خلاقیت خوش آمدید رافع ادم الهاشمی رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع آدم الهاشمي. رافع الهاشمي.